بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در شناخت خدا از طریق صفات حضرت حق است یکی از صفات کمالی خداوند که چند جلسه مورد بحث قرار میگیره علم خداست ما تعریف علم رو بیان کردیم و اثر را ذکر و چگونگی علم خداوند رو هم بیان کردیم که علم خداوند به حقایق علم حضوری است آن این نکته که چون علم اسفاتی است که در انسان هم وجود داره و انسان نوع محدودش و ناقصش رو داره برای اینکه وجه تمایز علم خداوند با انسان بیان بشه هفت خصیصه و ویژگی علم خدا رو هم ذکر کردیم مراتب علم خداوند رو ذکر کردیم علم در مرتبه ذات خداوند علم در مرتبه فعل و علم در کتاب یک بحثی رو باید در واقع دوباره من از نو بگم و اون این خداوند به سه نوع حقیقت علم دارد یک علم خدا به خودشه علم خداوند به ذات عبدسش اولا میدانید که همه اقسام علم خداوند از قسم علم حضوری است علم حضوری معلوم نزد عالم حاضر است علم حصولی صورت معلوم نزد عالم حاصل است الان علم شما به خودتون شخص خودتون حقیقت خودتون نزد خودتون حاضرید علم شما به خودتان از سن خیرشیه حضوری است چون خودتان نزد خودتون حاضرید یا علم شما به حالاتتون اینکه قمگین هستید اینکه شاد هستید شادی در واقع معلوم شماست اما صورت شادی که معلوم نیست نزد شما که بله خودش نزد شما حاضره گرسنگی که صورتش نزد شما حاضر نیستش که خودش نزد شما حاضره انسان هم علمش به خودش و احوالاتش علم و حضوری است اما علم شما به من اینکه منو دارید میبینید من که نزد شما حاضر نیستم که من نزد شما حاضر نیستم که یعنی اساساً علم در محدود جسم اصلاً مطرح نمیشه علم در محدود نفس انسان روح انسانه من که نزد نفس شما که نیستم که اون چیزی که از من نزد نفس شماست چیه منه؟ صورت منه این میشه علم حصولی ولی خداوند علم خودش به خودش از باب علم حضوری ذات اقدسش نزد خودش حاضر است این یک سنخ علم خداست و یک نوع از علم خداست نوع دوم از علم خدا این است که خداوند علی اعلی به همه حقایق آلم علم دارد قبل از خلق کردنشون قبل از اینکه ایجاد بشن علم خداوند به همه موجودات قبل از خلقتشون که این میشه علم خداوند در مرتبه چی؟ ذات علم خداوند به موجودات قبل از خدمت خلقتشون ممکن است که استعال رو برای شما پیش بیاره. قبل از خلقتشون در کجا ما یه تقسیم بندی برا عالم کردیم گفتیم جهان هستی اینکه که چند قسم عالم دارد نمی اما هجمالاً الحمدلله رب بله آلمین جمع است و جمع در نزد عرب اقلش ستا و اکثرش هر چقدر خب ما هم اوال وجود رو وقتی بخواییم راجبش بحث بکنیم اقلش ستا اما اکثرش ما نمی دونم به ما نگفتن چون به ما مربوط نیستش در کمیسیون خلقت از ما هم وعده نگرفتن که با ما مشورت کنن چند تا حرف کنیم خوب مثلا کاری که به ماش ربط نداره ولی اهل معرفت میگن عوالم وجود بر اساس حروف مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم که 19 تا است عوالم وجودم مثلا 19 تا است اونم حرفش اونا میزنن حالا بعض صورت یکی از اون عوالم اسمش عالم امره عالم امر عالم خلقت تمام موجودات است قبل از آمدن به جهان ماده عالم امر همه موجودات در عالم امر خلق شدن آیه شریف سور مبارکه قمر آیه پنجاه و ما امرنا و فرمان ما نمی بوده باشد الا واحده فرمان ما در همه نظام هستی یک چیز بیشتر نیست کلمهن هن بلبسر که مثل یک چشم با هم زدن از حیث زمان که بخواد بگه اینقدر سریعه خب امر خدا در عالم امر یک چیز است یعنی همه خلایق در اونجا به یک فرمان هستند اراد ان یکون شیان یقول کن وقتی میگوید کن وقتی خداوند در سوره مبارکه یاسین 82 انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون خب این یکیه به سرعت هل البصر چش به هم زدن همه خلایق در عالم هستی در عالم امر تحقق پیدا میکنه این به این معنی که مثلا فضل کنیم اونایی که سال هشتاد و شیش خلق بخوان بشن سال هشتاد میان نه یکی امرا امرونا واحد الا واحده یک چیز بیشتر نیست وقتی خلقت یک چیز شد همه اون خلقت مخلوق نزد خداوند چه هستن؟ معلوم هستن پس معلوم هم نزد خدا چه خواهد شد؟ یک چیز بیشتر نخواهد شد عالم امر یعنی عالم که موجودات از کتم عدم خارج می شوند و لباس هستی می پووشند تموم شدند. اینها در عالم امر یک حقیقت هستند، یک معلوم هستند و علم خداوند به اونها علمیست اجمالی. یعنی چی علم اجمالی سابقه بر این عرض کردیم ببینید ها ما عرض شرا که به محسوسات تنظیر می کنیم مثال میزنیم مثال و ممثل از همه جهات شبیه هم نیستن مثال از یک جهت مغرب ذهن است ولی از هزاران جهات با اون ممثل چی کاملا متفاوت ما ارض کردیم که علم خداوند در عالم امر به همه موجودات تعلق میگیره عالم امر قبل از عالم چی ها؟ ماده است. آیش رو هم براتون خوندیم هم سور مبارکه قمر آیه پنجاه و هم سور مبارکه یاسین آیه هشتاد و دو حقایق در اونجا بل امر تحقق پیدا میکنن یعنی خرق میشود وقتی خرق شدن به بل الواحده نزد خداوندم چه هستن معلوم هستن چون اونجا زمان ندارد دلیلش هم این است که علم خداوند به حقایق در مرتبه چیه؟ ذاتشه در, عالم در, در واقع مرتبه ذاتش هیچ زمانی وجود نداره نکته مهم اینه که ما در عالم زر هممون تحقق پیدا کردیم و در تحققمون بلا گفتیم امروز به بستر لا خفتیم ولی اون روز همه موجوداتی رو که تا روز قیامت از جنس بشر باید خلق می شدن رو حضرت حق جمع کرده ازشون اقرار گرفته و شهادت گرفته این عبر و نواهده است علم خدا در این مرتبه اجمالی است مثال زدیم مثال این بود که گفتیم یک دانشمند ریاضی بر اساس بلد بودن یک قانون و یک فرمول ریاضی قادر خواهد بود که هزار مسئلهی که بر اساس اون فرمول هست رو کار بکنه؟ حل بکنه ولی ما در وهله اول با اون دانشمند ریاضی میگیم که آقا شما قانون و بلدی. درسته؟ میگه بله بنابراین ما نتیجه میگیدیم که ایشان بل اجمال هزار مسئله رو چی کار بتونه بکنه؟ حل بکنه میگیم اجمالاً شما عالم به هزار مسئله هستید چرا؟ چون من میدونم شما اون قاعده رو بلدی درست شد؟ علم اجمالی اینه حالا ای که شما بگید آقا علم اجمالی این ریاضیدان چجوری حاصل میشه خدا همه اصلا ربطی به این نرمه فقط خواستم بگم که چی؟ علم اجمالی اینه یعنی این که من چون میدانم این آدم یک فرمول ریاضی رو برده و میدانم که هزار مسئله بر اساس این فرمول حل میشه میگم اجمالاً ایشون عالم به هزار مسئله هست بعد کی علم من میشه تفسیدی و یک علم جزئی زمانی که ایشان بشینه پای مثلا فرسق کامپیوترش شروع بکنه به هزار مسئله رو شدار کردن یک دو سه چهار نصد و هزار مسئله اون شهر علم خداوند در عالم امر به موجودات علم اجمالی است هر که, که این موجودات آمدن در عالم کانه یعنی عالم چی ماده هر که اینها آمدن عالم ماده علم خداوند در مرتبه فعلشه علم خداوند در مرتبه فعل یعنی اینها رو خلق چه کرده است مادی کرده مسبوق به زمان میشه مسبوق به مکان میشه به خاطر که متعلقش زمانی و مکانی الان خدا خلق کرد اینجا خدا خرق کرد 21 سال پیش خرق کرد در اسفهان خرق کرد در شیراز خلق کرد همه اینها اینو تفسیدی میشه علم خداوند به موجودات بعد از خلقتشون در عالم ماده علم خداوند به موجودات قبل از خدمتشون خلقتشون در عالم امر بعد از خلقت و قبل از خلقت به کجا تعلق میگیره عالم ماده قبل از خلقتشون در عالم ماده مشمول و ما امر الا واحده است در عالم امر هستند مختصات بودن در عالم امر این است که اینها از کتم عدم خارج شدند هر آن چیزی که بخواهد از کتم ادم خارج بشود باید ممتن الوجود نباشه. ممتن الوجود نباشه. پس فقط چیاد از کتم ادم خارج میشن؟ ممکن الوجود. اما همه ممکنات خارج نمی‌شن. اون ممکنی خارج میشود که بر خلقتش صلاحی وجود داشته باشد و مصلحتی وجود داشته باشد یه مسلحتی رو بتونه استیفا بکنه او حدا خلقش میکنه پس خیلی از موجودات ممکنه در مرتبه علم خدا قبل از خلقت چی شدن قرار گرفتن یعنی از کتم ادم خارج نشدن چون مسلحتی بر وجودشون تعلق نگرفته در این حالی که امتناعی هم در وجودشون وجود نداشت این رو من مجبور شدم یک بار توضیح بدم به خاطر اینکه عالم امر عالم قبل از ما دست و ما امور الله وحده مختصاتش این است که از کتم عدن خارج می شود اما هنوز تعلق به عالم ماده نگرفته علم خداوند به حقایق در اون مرتبه علم اجمالی است وقتی اینها رو در نظام هستی به شرایطشون زمانن و مکانن ایجاد میکند میشه علم خداوند به موجودات بر عالم چی کن بعد از خلقتشون در عالم ماده چون اثر ما در عالم کجاست ماده است بو در عالم ما در عالم عمل که اصلی نداریم که اثر وجودی ما در عالم ماده است بنابراین اصلا همین هم بهش میگه خیلقه بعد از خیلقه در عالم کجا؟ در عالم ماده او وقت علم خداوند در عالم ماده به همه حقایق یک نوع علم چیه؟ تفسیل است به تمام جزئیاته پس عالم ماده داریم و ما همونه لا واحده عالم کام داریم که همه عالم ماده است و عالم اثر است و فعل و انفعال این هم در مرتبه علم این علم خداوند در مرتبه چیه؟ در مرتبه فعله ببینید برای که مثال بزنید که علم فعلی چجوریه؟ شما رجلش استید مسلم اما که با من باشید همچین معلوم نیست چرا؟ چون شما صاحب یه قوه هستید به نام قوه خیال. این خیال مرتبه نفس شماست. شروع بکن به سازندگی یک سری سوهر فردا ما همین رو داریم می‌سازیم. همه اینا در ذهن شما چی میشه؟ یه صورت دیگه درسته؟ خب این صورت کی ساختش؟ نفس شماست. خب فعل شما هست یا نیست؟ بله؟ چون نفس شما ساخته فعل شما هست. درسته؟ از طرفی همون فعلی که تو ذهنت هست معلوم شما هم هست یا نیست؟ بله؟ پس علم شما هم هست. اینم خواستم براتون بگم که علم در مرتبه فعل چجوری معلوم طرف بیشه؟ من خودم نیسازمش اون صورت هایی که تو ذهنم میشه فعل من و بعد همچون معلوم نفس منه میشه چی؟ علم من دیگه این دیگه آخر حرف بود علم خداوند در مرتبه فعله میسازد خلقش میکنه. و بعد هم اون مخلوق نزد خداوند حاضره میشه چی؟ معلوم خداوند نزد نزید شماست حالا ایکی گفتم چی واسه شما ممکنه این اتفاق بیفته برای که خب دانشمندان متاسفانه اثبات کرده که تمرکز انسان ها پیش از هشت دقیقه تو مسئله وجود نداره یعنی بقیه هشت دقیقه ما زائده رضا میگن کسی برنده است که تو هم هشت دقیقه اول حرف اول آخر بزنه ما هر هشت دقیقه مهمه هشت دقیقه اولم راجب علم خدا بود در تقسیم بندی که هست حالا هشت دیگه دو یه بحثی وجود داره که آیا علم خداوند به جزئیات تعلق میگیره یا نه آیا علم خدا فقط به کلیات یا به جزئیاتم تعلق میگیره به شما در زمان کذا در مکان کذا با مختصات کذا وقتی یه همچی علمی برای خدا بخوام اثبات بکنیم میشه علم به چی؟ جزئیات خب يا خداوند علم به جزئیات داره یا نداره؟ خب ما میگیم که لا رتب ولا یابسه نزد خدا هست که اصلا حرف نیست که همه قبل از که ما معلوم باشيم نزد خدا حاضر بودیم و تا معلوم به چی؟ معلوم ما دینار همه شو با هم در واقع استفاده بفرمید من برای زینت بیان نکردم این علوم یه خود تفکریه شما شما هرچی که توی دانشگاه یا حالا غیر از این سلسل مقایز تو حوزه بخوانی اگر راجوشم فکر نکرد یه اجمالا یه مطالبی هست ولی اینا ها باید راجوش فکر میشه صافاً باقتا هم میخواید سخته من خودم میدانم که سخته ولی کارش نمیشه کردیه راه همینه راه همین مگر اینکه برید با بشید تحصیب پیدا بکنید که اون هم باز خودش از این چیه سخت داره به خاطر اینکه گفتش که موجودم رو بیارید و اون رو محکومش کردن و گفتن چیکار بکنید گفتش که یا باید یک کیلو پیاز بخورید یا ده سیر فرفر بخورید یا هشتاد تا تازیانه اینها با خودش فکر کرد که اگر که که برش کن، آرفر فرم بیکور می‌تونم 10 چیزی نیست. قاشق اول به قاشق دوم قوام نیم ولش برش اصلا تو دوست دو, دو قاشق رو جذب می‌کنه. چرت قاشقی گش پنده. چی پیاز میخوریم پیاز آورده می‌دهی پیاز چیزی نیست که توالله عرب روبه که با دو تا گاز که بی پیاز زد دید که پیاز همونتونه با با با همون تازی ها نروده بهتر از هم حالا رسیدن خدا ستا راکی بیشتر نداره که اپتون مراهاشو بیان کرده یکیش تحذیبه این که بله ولش مردش نیستیم مردش نیستیم مردش نیستیم آلا یکیش رسیدن به آیات اصله آیاته که اون بود علی یقین بشی اونم که احلش نیستیم. همین عقلی رو بریم جلو بیمونه چی میشه شاید خدا دلش به اون بسوزه شاید خدا دلش به حالون بسوزه بسوزه به معنامی که یه رعفتی که بکنه که انا علی نال خدا من باید هدایت کنم خیلی خب تو کاسش تلاشش رو میبینم بودیزم تو کاستش ما منتظر همین مناس حالا خدا به جزیات داری یا نداری جزیات از کردم یعنی علم به مقتصاد مقتصاد زمانی مختصات حالی مقتصاد مکاری و اینا خب اگه چه اشکالی داری که این در بحث رو انجام بدید حالا مقالش رو ببینید چونی یکی از مسائل در درباره علم الهی آن است که آیا خدا به اشیاء و حوادث جزئی نیز علم دارد یا علم او منسله کلیات است به عبارت دیگر آیا شیء یا شخص خاصی که در زمان و مکان خاصی وجود دارد یا حادثه‌ای جزئی که در زمان و مکان معینی اتفاق میافتد؟ و عنوان اینکه امر جزئی و شخصی میتواند معلوم خدا باشد. با توجه اونچه در علم پس از ایجاد بیان کردیم به این پرسش باید مثبت پاسخ چی بدین مثبت بدین دید. چون خداوند به همه خلائق در آلم بعد از خلقشون چیه بالای علم دونه یکی از مراتب علم خداوند علم در مرتبه فعلش علم بعد در مرتبه فعلش بعد از پیدایشه پیدایش هم در عالم ماده است یعنی با حسب تمام جزئیات شدیگه بر اساس اون چی که گفتیم باید این مثبت باشه بس خدا علم جزئیات دار ولی برقی از متکلمان منکر علم خدا به جزئیاتن و معتقدن خدا به جزئیات از طریق ماهیات کلی و معقول آنها آگاهی داند یعنی میان خدا فقط باشه به کلیه قضیه است حالا این خودش از طریق معقول چیه این ما میگم به جزئیات علم نداره. حالا اشکالشون رو بفهمیم چیه تا جوابشون رو بدیم. این گروه برای خودشون دلیل میارن. دلیلشون اینه. یک تحول دائمی جزئیات. اینا میگن که خداوند از کنم حضور انورتون که علم به جزئیات نداره چون که علم به جزئیات جزئیات دائما در حال تغییره. شما 5 سال بوده شده 6 ساله مختصات تغییر پیدا کرده شده هفت سالت مختصات تغییر بده کرده شده 8 سالت مختصات تغییر بده کرده شده سی سالت مختصات تغییر پیدا کرده شده 40 سالت تغییر پیدا کرده جزئیات دائما در چی در حال تغییر خب این تغییر باعث می شود که اگر خداوند بخواد علم به جزئیات داشته باشه اینا خدا اینجوری میگن ها. میگن اگه خدا به خود علم به جز یاد داشته باشه دائما باید چی بشه؟ در معرض تغییر قرار بگیره چرا؟ بله؟ چون در واقع معلومش دائما داره تغییر پیدا میکنه دیگه پس هم باید دائما چی بشه؟ تغییر پیدا بکنه در حال که زاد خدا من چیه؟ ثابت چون مجرده چون ذات خداوند مجرد است و چون ذات خداوند ثابت است بنابر این علم جزئیات امکان نداره چرا چون علم جزئیات علم به تغییرات علم به تغییرات تحول دائمی جزئیات یکی از ادله‌ای است که جناب تمسک میکنم و میگن که خداوند علم به جزئیات نداره یکی از عدلی مخالفان علم الهی به جزئیات آن است که امور جزئی همواره در تغییر و تحول بنابراین اگر خدا به جزئیات عالم باشد از آن رو که باید مطابقت علم او با واقع همواره محفوظ بماند به طبع تغییر معلوم یعنی جزئیات علم خدا نیست چی خواهد کرد؟ تغییر خواهد کرد و لازمه این مطلب آن است که ذات الهی که حامل علم است تحول،, تحول پذیرد حالان که ذات الهی از هر تغییر و تحولی منزده هست بنابراین ممکن نیست علم خداوند به جزئیات وجود داشته باشد. شکالیشون میده، شکالیش کاملاً جی؟ یعنی نه واقعاً یه خلط مهم کردن. رون اینکه ما از هی... حالا من چرا هی اسلام کنم؟ علم خداوند به حقایق علم چیه؟ بله، حضوریه. علم حضوری یعنی چی؟ حضور معلوم نزد ها درست شو؟ در حالی که این اشکال فقط در یک مبنی وارده که علم خداوند به حقایق علم حصولی باشد یعنی صورت اشیا در ذات خدا باشد در حالی که صورت اشیا در ذات خدا نیم برکه خود معلوم نزد خداونده قایم معلوم 5 سالش 8 6 سالش 7 سالش 8 سالش،, سالش اون تغییر میکنه نوع حضور او تغییر میکنه لازم نیستش که محضر تغییر رو پیدا بکنیم من در همون جاست ثابتم هم. من نه با خدا خدا ثابت نه نوع حضور معلوم تغییر بده بکنیش کاری هم نداره چرا؟ چون خداوند علم خداوند علمه حضوریه اگر خداوند علمش به صورت حصولی بود لازمش همون بود که اینا میگفتن چون مثلا فرص کنید علم به شیست سالگی معلوم در 6 سالگی کاملا با معلوم در مثلا 20 سالگی متفاوته درسته؟ برعکس دیگه 20 سالگی کاملا با 6 سالگی متفاوت خب این یه تاثیر در ذات و من گذاشته اون 20 سالگی یه تأثیر دیگه در کرده یه معلوم هستن. و من در زات من تغییر ایجاد میشه. و حالا که زات اقد اعله مبرای از تغییره چون مجرده. حاسخش به این که علم خدا و خداوم حضوری است اصلا به ذاتش چیزی ورود پیدا نمیکنه تا بخواد ذات رو چکار بکنه؟ تغییر بده. مبنای این دلیل آن است که اگر خدا علم جزئیات داشته باشد علم او حصولی و از طریق حلول صورت جزئیات در ذات الهی خواهد بود و از این رو تغییر معلوم یعنی جزئیات با تلزه به تغییر صورت آن و در نهایت موجب تحول ذات الهی به عنوان محل آن صورت خواهد بود اما مکرر ارز کردیم علم الهی علمی است حضوری ولیزا علمه جزئیات چیزی جز وجود و حضور جزئیات در نزد او نیز در نزد او در ذات او علاواتی در این صورت نیز تغییر جزئیات بستعظم تغییر علم هست لیکن تغییر این علم از آنجا که مربوط به مقام فعل خداونده است و از اصاف فعلیس به هیچ و سبب بروز تغییر در ذات یک حرف بسیار مهمه. یک اشکار دیگر هم کردن گفتن آه علم جزئیات علم ابزاریه. عبزاریه درید دیگر منکران, منکران تعلق علم الهی به جزئیات این که میگن آه علم خداوند به جزئیات تعلق نمیگه دریشون اینه حصول چنین علمی نیازمند بکار به کارگیری ابزار و آلات مادیست در حالی که مقام الوهیت از شنو معنای منزه و مبراست در پاسخ خیلی واضحه ها علم حصولیه که نیاز به ابزار داره و نه علم حضوری علم حضوری نزده معلوم نزد عالم حاضر بودن نیاز به ابزار نداره که علم حصولی است که تعلقش به معلوم نیازمند به میکروسکوپ و نیازمند به چشم و نیازمند اینا بنده‌های خدا تصور کردن علم فقط حصولی علم حصولی رو تسرید دادن به خداون در حالی که ما میگیم علم حضوری است و حصولی و علم حضولی در ذات خداست لذا, ون... لذا نه در واقع تغییر جزئیات درش معنا دارن و نه نیاز بودن به ابزار مادی خداوکیلی علم تمام شد این علم خداست یا حالا وقت بدا بکنید مطالعه بکنید تا بیشتر یادش بگید. خب دومین صفتی رو که می‌خوایم راجعش صحبت می‌کنیم صفت قدرت است هم که ما در بحث می‌کنیم از باب این است که اینها مقدمی میشن برای بحث جبر و اگه علم یاد نگیری اونم یاد نمی‌گیری اگه قدرت رو متوجه نشی اون رو هم متوجه نمی‌شی بنابراین به دقت گوش بکن من مترسد این معنی هستم که وقت شماها رو پر بکنم اونم با این مطالب سنگین. بهترین کار برای وقت پر کردن یک کارم یه درست اخلاقی بگه تا خود خیابون و امیر جمعیت میشینه بهترین کار هم برای من معونش کمتره هم برای شما راحت تره. البته من تقیی به درس‌های اخلاق نمی‌کنم، بلکه واقعیت درس‌های های اخلاق نمی کنم. اگر ما درس اخلاق هم بگیم شبیه همین درس هست. شبیه همین درس هست. چون اخلاق هم چیز آسون نیست. نه کار آسون. بله داستان تعریف کردن آسونه. خیلی آسان مطبع با داستان کسی بجایی جایی نمینست شما باید در مثل اخلاق نفسو بشناسی نفس شناسی دوجه از اسفاره اسفار مولا سدرا خب ما بخوام اونو بدیم که نمیشه باید یه در مثلا فرض کنیم یه خبری از او بدیم بروش درس اخلاق با سنگی میشه دنبال آسان نماشید کار سخته حالا رجوع قدرت خدا صحبت بکنید قدرت خداوند هم یکی از صفات صبوتیه است یکی از صفات ذاتیه حضرت عقیق و موجب کمال حضرت عقیق تا اینجا هرچی گفتیم راجع علم بود یعنی راجع خدا داناست. اما از اینجا به بعد هرچی میگیم به قدرته یعنی خدا است به نام خداوند توانا راجبی توانا بخواد صحبت بکنیم محوله سختی هم هست ولی اگر آدم دقت بکنه مطالب خوبی در مسئله دستش میان در قرآن کریم از مسئله قدرت خدا به واجه های زیر در واقع استفاده کردن و ورود پیدا کردن یکی واژه قدیر سور مبارکه بقره آیه بیست قدیر با قاف نبا غن <تصحیح> ان الله علا کل شیئن قدیر خدا بر هر چیزی تواناست خدا بر هر چیزی تواناست. شما همین آیره که یاد بگیرید ده تا ای که ما بعد بخواییم بگیرید رو باید پاسخ بدین. این ده تا شبهه رو شما در دوران مدرسهتون شنیدید که خدا بیتوله یه سنگی رو خلق بکنی که خودش بلند نکنه اینا هر چی جواب بدی خدا رو بردید سا. بگی میتونه خرب بکنه که سنگر رو بلندش نکنه خب بس خدا آجزه بگی نمیتونه خلق بکنه که بازم خدا میشه چی؟ آجزه درست ولی آیه شریفه میگه ان الله علا کل شیعن بر هر چیزی قدرت بر چیز تعلق میگیرد نه بر عدم اون که شما میگید محال است قدرت به محال تعلق چرا؟ چه قدرت یه فاکتوری داره قادریت قابلیت اون محال قابلیت تعلق قدرت رو نداره این اگه مثلا شما راهنمایی بودید بلد بودید چقدر مثلا جوابه ولی اینه سوال انحرافی ماتریالیست هست یه دورانی اونا با این سوالا کیف میکردن الحمدلالله کسی, کسی به فکر انکار خداست نبه فکر اثبات خداست همه زندگی دنیاشون شون هستن که اونا دست از انکار وردشون هستن همه همه گرفتار دنیا هستن که اصلا فراموش کردن عشق فراموش کردن عشق اصلا یادشون دفته که خدا به روز مرگی افتادن مردم هر روز هم یک مسئله دارن که تا یه ماه راجبی صفا کنن خدا وکی دید جامعه ما همین دیگر تاست جامعه ما همین ما موتدهید یا علیک شما این مجید دیگران چیه فراموش فرانوش کردنش دیگه از این سال هم اطرح نمی کنه خدا میتونه تونه خرق کنه اصلا دیگه نیازی نیست اینقدر آن شفته شده دنیا و اینقدر افراد آلوده دنیا شده که یادشون رفته شبای با این دنیا یه صاحبی هم داره صاحبش یه واجهی هم که به باون قدرت ازش استفاده کردن در قرآن این واژه مقتدره سوره مبارکه کهف آیه 45 کاند لا علا کل شیئن مقتدرا خداوند بر همه چیز بسیار تواناست مقتدر اسم فائل از باب افتعال از ماده قدر مشتق شده یعنی توانایی بر یک شی این هم باز یکی از اون واژه‌ها است که از قدرت خداوند درش یاد کردم. دس سوره مبارکه فاتره آیه چهار اولا نفی عجز میکنه بعد قدرت اثبات میکنه. و ما کان الله لیو عجزहू من شیئن فسماوات ولا فلک. و هرگز خداوند چنان نیست که چیزی نه در آسمان ها و نه در زمین لای او از چنگه قدرتش خارج شده هیچ موجودی نه در آسمان نه در زمین از چنگه قدرت خداوند خارج نیست چرا انه کان علیم قدیران چون او داناست و تواناست واژه دیگری رو که بهش به کار بردن واژه قادره. صورت مبارکه مرسلات آیه 23 فقدرنا فنع عمل القادرون و توانستیم و چه نیکو توانستیم. یعنی عالی انجامش دادین. بعد به اینجا که قدرنا فنع ام القادرون خوب انجامش داد. نیکو است. تنها کسیست که فعلش رو من قادرون توصیف بکنن و درست هم همینه کس غیر از اون رو پیشون بکنن واژه دیگری هم هستش که از اون واژه به قدرت خدا در واقع کار چیز بیکنن یاد بیکنن واژه مقیته اسم فائل از قوت از که بر نگهداری و توانایی در واقع بر چیزی دلالت میکنه. مقیت یعنی کسی که نگهداری میکنه و چیزی رو تواناست اثبته بشیم یه صفت دیگه هم هست صفت مهمن اونم در معنای قدرت به کار میره مهمن یعنی قائم به امور کسی که قائم به با امور باشد یعنی قدرت بر اون هم داره واجه قدیر چهل و پنج بار واجه قادر دوازده بار واجه مقتدر چهار بار موقیت هم یک بار حالا صفت محیمن هم در قرآن کریم به عنوان قدرت خدا صحبت نشده اما اینکه که قرآن کریم بر سایر کتب آسمانی محیمن هست در زمین صحبت شده بنابراین نه همه واجه هایست که از قدرت صحبت میکنن حالا این قدرت به چه معنی؟ به نظر شما قدرت به چه معنی در تعریف قدرت باید این لحاظ بشه دو تا تعریف میکنن تعریف دوم کاملتر جامعتره. ولی ما از بابی که ممکنه خدای نکرده یک دفعه شما یک جایی این تعریف رو مثلا باش مواجبه باش که چه فیلانی نگفت ممکنه خدای نکرده شاید که حقش اینه که بگی با بابا نه خود رو اینقدر به زحمت من دوست. همون تعریف مشهور رو دو تا تعریف تعریف متکلمه یه تعریف فلاسقه تعریف متکلم اول قادر رو تعریف بکنیم چون قادر یعنی کسی که چی دارد قدرت داره تو بعد برسیم به قدرت قادر از سر متکلمی کسی است که دارای صفتی است این صفت یه ویژگی که به واسطه آن انجام و ترک فعل برای او چیست ممکنه.الغادر رو ول لذی یسخ ون یستور ون حلف ممکن است از فیصد بشه ول لا یستور و ممکن است از فیصدر نشه. تلفی دوو. قائم الفلاسفاس. غادر کسی است که اگر بخواهد فعل را انجام میده. و اگر بخواهد آن را ترک میکند الغادرو عبارتون انکونهی به هیس ازا شاء فعل و ازا چی لم یفعل اگر بخواد انجام میده اگر هم بخواهد انجام نمیده اینجا باید خیلی زیرک باشی و بفهمی که اعمال قدرت در ارتباط تنگا تنگ با مشیت اگر ما راجع به قدرت خدا صحبت میکنیم اگر بخواهد مشیتش تعلق بگیرد ایجاد می‌کنه و اگر مشیتش تعلق نگیرد ایجاد نمیکنه. پس شما باید اینجا چی رو بدونید مشیت رو هم بدونه خب یه چیز دیگه هم داریم آقا این مشیت یعنی خواستن وقت اراده یعنی چی؟ وقت ارتباط بین اراده و مشیت رو چیکار قرار بکنید بدون تا بتونید فعل خدا رو تحلیل کنید بدون دانش دانستن مشیت الهی و بدون دانستن اراده الهی شما نمیتونید فعل خدا رو تفسیر کنید قدرت خدا رو تفصیل کنیم. چقدر ما از خدا بیگانه ایم. چقدر ما از خدا دوریم. نبیدونیم اصلا هیچ چیش رو نبیدونیم چی کار بکنه. مفاد هر دو تعریف یک نکته درش پشترکه. و اون اینکه قادر قادر کسیست که اگه بخواد یعنی خواستن درش هست بنابراین ما وقتی راجب به قدرت صحبت کنیم اصلا قدرت مختص اون کسیست که مختار باشد نه مزتر و مجبور باشد از نظر ما اون فائلی که در اعمال اثرش مجبور است اون رو ما قدرت نمیگی. مثلا آتش اثرش چیه؟ سوزاندن این آتش در سوزاندن از خودش اراده داره یا نداره؟ مثلا میگه آقا امروز این مال مال مسلمان ما نمیسوزونیم این مال مال باهائی ما میسوزونه یه همچین چیزی داره بله اثر داره ها ولی چون این اثر به خواست و مشیت بر نمیگرده اسم اینو قدرت نمیذارن اسم اینو نهایتاً میذارن فاعل مزتر نه من ذیب المسترب فاعل موجب این مجبور خورشید که درمیاد میاد اثرش چیه؟ بله جرمشان. گرماس نوره بیتونه یه روز در بیاد بگه آم ما امروز نور نمیکنیم نمی در حالی که در آمدین بله اثرش اصلاً مسبوغ به مشیت نیست اثرش اصلا مسبوق اراده و انتخاب نیست بنابراین اونو بهش فاعل چی میگیم موجب میگیم فاعل مزتر میگیم کسی که در اثر بخشی اراده نداره از این قدرت تعبیر نمیکند اما اونجایی که من شما از همه بالاتر خدا بخواهد یه کار رو انجام بده انجام میده و بخواهد انجام نده انجام نمیده اون رو بهش میگن چی؟ قدرت چون فعل و ترکش مسبوغ به چیه؟ مشیتشه مشیتش به اراده تعلق میگیره حالا فرق بین مشیت و اراده رو می مشیت خیلی خاست باطلیست اراده خاست فعلیه در مقام فعل خدا اراده میکنه ولی در مقام علم خدا چه میکنه مشیت و خدا نکنه که در ازل مشیتش تعلق نگرفت دوم که تو آدمه چی؟ چی؟ پول داری بشید که به هر دیواری بزنید چی اتفاق میشه، هیچ اتفاقی. که بخوای چیزی رو اصلاح کنه، اون مشیاتر اول ببینید اون تشویق میشه تغییرش داد. بله، ادعا یاردال قزاف، ولو ابرم ابراما. چقدر دعا رو مقبولش آسان میگیری؟ چی کار میکنه؟ مشیت رو تغییر میده چون مشیت عرض الدق همواره مشییت قطعی نیست مثل مرگ من شما میمونه ما یه مرگ معجل داریم یه مرگ مستقر. مستقرش که برسه که دیگه لا یستقدمون ساعتا ولا یستقرون بی بریم ولی معجلش به واسطه صدقه تغییر پیدا میکنه باست دعا تغییر پیدا میکنه به راسته عمل نیک تغییر پیدا میکنه پس تغییر پیدا میکنه اما مشروط به اینکه در مشیت مشیت قطعی نشده باشه حساب ب جبی تا قطعی نشده. قطعی, نشده. قطعی نشده نه چون به حسب اون چیزی که باید واقع بشه با مقدساتش هست با ماقتصاش همواره اون که مختصاته. خب بذار ببینیم به خودش دیگه این عمل میگه به اسم بحث جبر اختیار درست رو. همه چی دست اون مشیت است. او اشیاتا اول تقریپ ازیره. معظم آدم میگه مشیت مستقر نشه. بنابراین ما یه تقسیم بندی برای فائل انجام دادیم. یک سری فاعل رو گفتیم مختار هستن یعنی اعمال قدرتشون مسبوقه. اعمال اثرشون مسبوقه به چی هست مسبوق به مشیت مسبوق به اراده است بنابراین این اعمال اثر اسمشون رو چی بله این اعمال اثر اسمش قدرت ولی یه موقع هستش که فاعل فاعلی است که اعمال اثرش مسبوق به اراده نیست مسبوق به مشیت نیست اینه ما رو اسمشو قدرت نمیزنیم میگیم این فائل فائله موجب مستره مستره یعنی لابده ناشاریم قطعا همی اتفاق میدارده شک دومی نداره توجه بفهمی این تا اینجا یه خوده فکر کنم که بستتون باشه آه. تفاوت فائل مختار و فائل موجب رو در سه بنگ بیان بکنم و بستم باشونم یک فائل مختار از فعل خودش آگاهه زیرا انتخاب میکنه دیگه که این کارو انجام بدهد یا انجام ندهد این میشه فائل مختار ولی فائل موجب از فعل خودش آگاه نیستون حق انتخاب یک انفکا که فعل به لحاظ ذات فائل از فائل مختار ممکنه چرا؟ چون بر اساس مشیت دیگه مشیتم تعلق می‌گیرد که انجام بدهم، مشیتم تعلق میگیرد که انجام ندا، پس فعل از ذات و من چی میشه؟ منفک میشه. ولی انفکا که فعل از فائل موجب ممکن نیست. مثلا اثر بخشی نور خورشید هرگز نور خورشید جدا نمی‌تونه اون مشیتی نداره که ولی مهربانی شما که اثر وجودی شما باید باشد، باید باشه، نیست. باید باشه. ما باید به یک مراتب برسیم اما در همون هستیهای خودمون داریم سیر بکنیم و کیف بکنیم ما باید برسیم به رعفت خب. باید برسیم به شفقت خب شما میتوانید مشق... شفقت داشته باشیم میتوانید شفقت نداشته باشید. امروه آلش نیست از صبح که میاهی اخم. حالا این در واقع پیچیگی هم هستانی خودشون یادمه آدم های که ذاتا در قبض روح هستن همچه با خودشون هم گفتارن قبض روح اگر پیدا شد با توسل به امام زمان حلش کنیم هده یه روز همه چی از یاد تو خارج این فقط امام زمان میتونه آب رفته رو به جوب برگرد فقط توصیل به امام این یه اثر جدیدیست که خدمتون حالا شاید بعدها حال روش صوبت بکنم پس فائل مختار از فعل خودش آگاهه چون در واقع انتخاب داره انتخاب بسترزم نوعی آقاهی ولی فائل موجب حق انتخاب نداره انفکار که فعل یعنی اثر بخشی به لحاظ ذات فاعل از فاعل مختار جدا میشه یعنی اثر بخشی از فاعل مختار جدا میتونه رفع منشه رفعت باشه میتونه منشه رفعت نباشه ولی فاعل موجب چه خصوصیتی نداره از آنجا که قدرت نسبت به فعل و ترک یکسان است، میتواند انجام بدهد میتواند انجام ندهد فاعل قادر و مختار فعل خود را اراده می کند. پس فعل فائل فعل مختار مسبوق به چیه؟ اراده است. ولی فعل فائل موجب مسبوق به اراده نیست. یعنی نمی آماه امروز نورفشانی نمی کنی. شما هرکه که در بیایی باید نورفشانی بکنید. اون روزی یعنی که نورفشانی نمی کنی خداوند نمی خواهد شمس شمسو که اون بنده خدا میخواد نور داشته باشه خدا نور افشانی رو ازش گرفته توجه میفهمیم این هم خسائص قدرت قدرت همواره مسبوغ به چیه؟ مسبوغ به اراده و مشیت قدرت همواره در جایی ترسیم میشود که اگر خواستم انجام میدهم و اگر خواستم انجام نمیده ها تابریسیم به برگه مسائلش. ان شاء الله. الحمد دا.